رادیو صدای خلافات رادیو صدای حق نوات افم من مسلمانم من مسلمانم من مسلمانم من مسلمانم من مسلمانم من مسلمانم من مسلمانم و با شهامت غیرت و جرأت و هم شجاعت این هدف در ره دین و ایمان عاقبت یا زفر یا شهادت آقبت یا زفر یا شهادت این حقیقت بدان ای مسلمان شد فدا جان فاروق و عثمان همز با آن پار پاره خالد و حیدر و سعد و سلمان همز با جگر پار پاره خالد و حیدر و سعد و سلمان صد هزاران جوان لالگون شد این زمین بهرشان رنگ خون شد بهترین بندگان و رسولان اشک و خون محمد برون شد اشک و خون محمد برون شد بهترین بندگان و رسولان اشک و خون محمد برون شد بانگ تکبیر و زر اقتدار من است اقتدار من است جام شهد و شرف افتخار من است افتخار من است من مسلمانم ام و باشهامد غیرت و جرأت و هم شجاعت این هدف در ره دین و ایمان عاقبت یا زفر یا شهادت عاقبت یا زفر یا شهادت دین احمد غریب و حزین است ناله در جهان پرتنین است در شمال و جنوب شرق و هم غرب دین حق را خطر در کمین است هم غم مسلمان مقام است سروت و کاخ و یا پست و نام است هم غم مسلمان مقام است سروت و کاخ و پست و نام است خواب و غفلت سرا پاف تاده فتح و بیروزیش هم, بی هم حرام است خواب و غفلت سرا پاف تاده فتح و بیروزیش هم حرام است بانگ تک بیروزر اقتدار من است اقتدار من است جام شهد و شرف افتخار من است افتخار من است من مسلمانم و با شهامت غیرت و همش و هم شجاعت این هدف در ره دین و ایمان عاقبت یا زفر یا شهادت عاقبت یا زفر یا شهادت در فلسطین مسلمان چه حال است ظلم و بیداد و خونها روان است در عراق و در افغان زمین هم جمله تحت شکنجه کباب است ادعیم در قفس ها شکارن وندگر خست و خار و دیگری ملک و مالش هر کدام در عذابی و چارن ای مسلمان بیا پس وفا کن پرچم دین و باید علا کرد پرچم دین و باید علا کرد ای مسلمان بیا پس وفا پرچم دین و باید آرا کرد بنگ تکبیر و زر اقتدار من است اقتدار من است جام شهد و شرف افتخار من است افتخار من است من مسلمانم و باشا آمد غیرت و جرأت و هم شجاعت این هدف در رحیدین و ایمان عاقبت یا زفر یا شهادت عاقبت یا زفر یا شهادت لحظات خبری سوی خلافت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 صليل الصوارب صليل الصوارب نشيد العبا ودرب القتال طريق الحياة وبين اقتحام يبيد الطغا وحسيم صدا جميل صدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من نعلم يا عزيز بخبرهاية دولة الإسلامية على خلافات خوش نخست از همه توجه شما را به سرخطی چند خبر جلب میدارم سلیل تصرف یک ساخت ما نسوی مجاهدین دولت اسلامی در دمشق سلیل انهدام یک موتر نظامی کردها و از بین بینرفتن سرنشینان آن در برکه سلیل حلاکت یک تاجیر هندو در بنگلادش. دادگاه خلافت 16 فردی وابسته به القایده را در دمشق آزاد کرد کشته شدن سی شبن زامی در پشاور و, و, و از درگیری ها در اطراف فلوجه نیز شما را با خبر می سازیم صليل الصوارب نشيد العباة ودرب القتال طريق الحياة بين اقتحام يبيد الطغاة ونشيد مصادر يميل صدى صليل الصوارب وإن هم مشروه خبرها نیروهای دولت اسلامی در سلسله حملاتشان وارد یک ساختمان در جاده خیفا واقع در اردوگاه یرموک شدند درگیری نیروهای صحوات با مجاهدین خلافت اسلامی در این منطقه رخ داد در اثر این درگیری دو از صحوات کشته شدند ها از ولایت برکه می‌رساند که مجاهدین دولت اسلامی یک اراده نظامی نظامی نیروهای کردی را در جاده واصل های هول و بحیره آماج انفجار ماین ما قرار دادند در اثر این انفجار موتر با تمام سرنشینانش از بین رفت یک حمله کننده دولت اسلامی تاجری هندو را در ناحیه گیواندا در شمال بنگلادش با به چاقو کشت این عملیات از سلسله عملیاتی بود که افراد مرتبط با دولت اسلامی به صورت مکرر در مناطق مختلف بنگلادش انجام می دهند در این حملات تاکنون کنون چار هندو تیرور شدند که دو تنشان در ماه فبرواری سال گذشته حلاش شده بودند، یکی از آنها مبلغ و دیگری رئیس یک معبد هندویی بود. درگیری ها در اطراف فلوجه با نیروهای رافزی و مجوسی همچنان ادامه دارد، تازه ترین ها که مسئول لشکر آزادی فلوجه تابع بسیج مردمی در سری درگیری ها با مجاهدین دولت اسلامی در منطقه آمیریه فلوجه کشته شدند نیروهای راقی و شبه بسیج شیعه چندین حمله را در چند محور از جنوب و شمال فلوجه انجام دادند که نخستین حمله از منطقه السجر در نزدیکی بخشی الکرامه شروع شد که با مقاومت شدید مجاهدین دولت اسلامی روبرو گردید و پس از آن نبرتا به سوی امیریه فلوجه و البو عزیز کشیده شد که در تمامی این حملات ارتش رافضی عراق نتوانستند پیشروی قابل تذکری داشته باشند در همین حال سه حمله کننده استشادی دولت اسلامی بر دو تجمع نیروهای عراقی در اطراف آمریکا حمله کردند و موشک های هدایت شونده مجاهدین دو بولدوزر و یک تانک دشمن را در منطقه الموامیر از بین برد در همین حال یک خبر دیگر از این منطقه می‌رساند که دو حمله کننده استشادی دولت اسلامی نیروهای عراقی را که قصد پیشروی به سوی اطراف امریه را داشتند حمله قرار داد در اثر این عملیات شماری کشته و زخمی به دشمن وارد گردیده‌ و مجبور به عقب نشینی شدند در همین حال مجاهدین دولت اسلامی حمله دیگری نیروهای راقی را در منطقه بو عزیز در شمال غرب فلوجه دفع کردند در اثر وقوع این درگیری 15 کشته و زخمی از دشمن بجا گذاشت مجاهدین دولت اسلامی همچنان تواریستان حمله دیگری نیروهای راقی را در منطقه البو عبید در جزیره خالدیه در شرق ناکام کردند خبرهای رسیده از شام می که مجاهدین دولت اسلامی در یک عملیات تهاجمی بر روستای تل در نزدیک منطقه مالحه واقعی در جنوب غربی شدادی تسلط یافتند. شدادی در ولایت برکه واقع بوده و در این واخر شاهدی درگیریها میان مجاهدین و کردهای ملحید می باشد. تکتیر اندازان دولت اسلامی با استفاده از صلاح در اسکوف دو اسکر ارتش عراق را در کوه مکحول واقع در شمال بیجی به شم در همین حال دادگاهی اسلامی خلافت 16 فرد وابسته به القایده را که در اردوگاه یرموک تسلیم شده بودند آزاد ساخت یک بالتیاره جاسوسی آمریکایی در غرب شهر مسل سقوط داده شد یک خبر دیگر از بغداد هاکیس که یک تن از فرماندگان ارتش عراق در منطقه زیدان ولسوالی ابو غرایب در بغداد باسه همراهش تیرور گردید گزارش‌ها از شام می‌رساند که مجاهدین دولت اسلامی تیپ از سوانه را در اطراف منطقه حویسیس در حومه شرقی حمص از نیروهای سوری بازپس گرفتند و در اخیر یک خبر از خراسان مجاهدین دولت اسلامی سی عسکری اف سی یعنی شبه پاکستانی را در منطقه رینگ رود پشاور ترور کردند در اثر این حمله هر سه اسکر کشته شدند در میان کشته شدگان مسئولی شبه نظامیان نیست شامل است صليل الصوارم صليل الصوارم نشيد المباد ودرب القتال طريق الحياة علينا اقتحاما ليبيد الطغاة صليل الصوارم نريد الصدى صليل الصوارم نظر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من راديو صدى الخلافة ترجمه دری سخنرانی جدید شیخ ابو محمد عدنانی حفظه الله را تقدیم نمایت با عنوان تا زنده شود کسی که با دلیل واضح زنده می شود <تصفح> <تصفح> الحمد لله القوی المتین والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين أما بعد قال الله تعالى إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسليه إن الله قوي عزيز در حقیقت کسانی که با الله و پیامبر او بد دشمنی برمی‌خیزند آنان در زمره زبونان خواهند بود الله مقرر کرده است که حتما من و فرستادگانم غالب خواهیم گردید آری الله نیرومند و شکست ناپذیر است و پروردگار ما عز و در یهود می و یاد کن هنگامی را که پروردگارت اعلام داشت که تا روز قیامت بر آنان یعنی یهودیان کسانی را خواهد گماشت که بدیشان عذابی سخت بچشانند آری پروردگاری تو زود کیفر است و او آمر زندگی بسیار مهربان است و از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده که پیانبر صلی عليه علیه وسلم فرمودند قیامت برپا نمی شود تا مسلمانان با یهود بجنگند و مسلمانان آنان را می کشند تا اینکه یهودی پشت سنگ و درخت مخفی می شود و سنگ یا درخت می گوید ای مسلمان ای بنده ای الله این یهودی پشت من است بیا و او را بکش و دوباره از او روایت شده که پیانبر صلی الله اللہ علیه وسلم فرمودند قیامت برپا نمی شود تا روم در اعماق یا در دابق فرود آید پس سپاهی از مدینه به سویشان خارج می که در آن روز از بهترین اهل زمین استند هنگامی که روبروی هم سفارایی می کنند رومیان گویند میانی ما و کسانی که از ما کنیز گرفتند را خالی کنید تا با آنها بی جنگیم مسلمانان می گویند نه سوگند به الله میان شما و برادرانمان را خالی نمی کنیم. پس با آنها می جنگند یک فرار می که الله هیچ وقت توبه آنها را نخواهد پذیرفت و یک اومشان کشته می که برترین شهدا نزد الله هستند و یک اومشان در حال صبح می کنند که هیچ وقت دچار فتنه نمی شوند پس آنها به قسطانتینیه یعنی استانبول کنونی می رسند و آن را فتح می کنند پس وای بر شما ای سریبی ها سپس وای بر شما ای یهود هرگاه که سر حال هستید و موسیخ می کنید و تجاوزو و بغی می کنید الله از جای در آمد برای شما که گمان نمی کردید و بندگان او به سوی شما می آیند و بدترین عذاب را به شما می چشانند این آن چیزی است که پروردگار مان به ما وعده داده است و او سبحانهو عدل نمی کند و امریکای ناتوان همراه همپیمانانش گمان می کند که مؤمنان را می یا بر مجاهدان پیروز می شوند هرگز او تردید که پیمان صلیبی سیزده سال پیش به ایراق آمد با گمان اینکه کسی بر او چیره نمی شود و قدرت با تجهیزات و نفرات است سپس چند روزی بیشتر طول نکشید تا اینکه بوش موسیقی امر توقف عملیات نظامی را اعلام کرد و ادعای پایان جنگ و پیروزی نمود در حالی که خیال باف و دروگو و بسیار متکبر و مغرور بود پس ما به او خبر دادیم که جنگ هنوز شروع نشده مدت زیادی نگذشت تا اینکه دروغی بوش و راستی مجاهدان آشکار شد و آسیابی جنگ جنگشان علیه آمریکا و هم پیمانانش چرخید و ارتش آن در هر جای سرزمین دورود خیرت شد و در باطلاق نابودی افتاد که به ایزن الله از آن خارج نخواهد شد سپس بعد از هشت سال جنگ سخت که اقتصاد آمریکا را نابود و ارتیشش را درمانده نمود اوبامای قاطر اقب نشینی ارتیش سلیبی را از عراق با ادعای دروغ پیروزی اعلام کرد و در آن هنگام ما به او خبر دادیم که تنور جنگ هنوز داغ نشده و برایشان سوگند خوردیم که اگر بیرون رفتید حت قائد گشت و قاتل یهود و امریکا دروغ گفته و, و مجاهدین راست گفتند و این همان دولت اسلامی است که به فضل الله باقی و قوی تر است و این هم حامی یهود و آمریکاست که با ارتیشش برگشت و جگرگوشه هایش را برای جنگ مجاهدین پیش میراند و نابودی دولت اسلامی و خاموش نمودن جهاد را برای خودش و هم پیمانانش آرزو میکند ای امریکا بشنو ای ها بشنو آیا یهودیها بیش پروردگار ما از زوجل فرمود است. ولقد سبقت کلمت‌نا لعبادنا المرسلین، إنهم لهم المنصورون. و, إن جندنا الغالبون. و قطعا فرمان ما در باره بندگان فرستاده ما از پیش چنین رفته است که آنان بر دشمنان خودشان حتما یاری خواهند شد و سپاه ما هر آینه پیروز شوندگانند با آنان بجنگید تا الله آنان را به دست شما عذاب و خارشان کند و شما را بر ایشان پیروزی بخشد و دلهای گروه مؤمنان را خنک گرداند و خشم دلهای را بیبرد. و ما منتظر وعده ای او سبحانهو بوده و به آن یقین داریم پس سپاهیان و دسته های شما هرگز ما را نمی ترساند و تهدید هاو حملات شما ما را باز نمی دارد هیچگاه پیروز نخواهید شد و شما قطعاً شکست خورده اید یا اینکه، ای امریکا گمان می کنی که پیروزی با کشتن یک فرمانده یا بیشتر است پس در این صورت این یک پیروزی تقلبی است و آن یا هنگامی که ابو مسعب یا ابو حمزه یا ابو عمر یا اوسامر آکشتی پیروز شدی و یا اگر شیشانی یا ابو بکر یا ابو زید یا ابو عمر را بکشی پیروز می هرگز هرگیز نه پیروزی یعنی اینکه که دشمن شکست بخورد یا اینکه ای امریکا گمان می که شکست از دست دادن یک شهر یا باختن یک سرزمین است و آیا هنگامی که شهرها را در عراق از دست دادیم و در صحراها و بدون شهر و سرزمین بودیم شکست خوردیم و آیا ما شکست میخوریم و تو پیروز میشوی اگر موصل یا سرتو یا رقه یا همه شهرها را بگیری و ما هم به وضعیت اول خود بازگردیم هرگز نه بلکه شکست از دست دادن اراده و علاقه در جنگ است و در یک حالت ای آمریکا پیروز میشوی تو و مجاهدین شکست خورند شکست می خوریم و پیروز میشوی اگر بتوانی قرآن را از سینه مسلمانان برداری و بسیار دور است بسیار دور آنچه از دست دادید از شما دور شد بلکه ما اهل قرآن هستیم و جان را به بهشت میفروشیم ما از کسانی هستیم که از پایشان با بادی سرکش بر را طلوع کرد و تاجی ملیک قیصر را با نیزه گرفتند و دروازه راه را برای ابن الاصفر کشیدند چقدر بزرگوار و گرامی به دنیا آوردیم کناخونهایش خون آلود و بهار پرباران است پنجه برای شمشیری برنده آفریده شده برای بخشیدن گران ها و قله منبر نیزه ها را با صورت و سینهش می اندازد و پیشانیش را به جای کلای خود نگه می دارد ای امریکای ها بشنوید و بفهمید پس 13 سال از جنگ علیه مجاهدین در سرزمین رافیدین چی بدست آوردید و آنها چی بدست ساوردن. با ده ها بلکه ست ها هزار نفر به عراق آمدید در حالی که ما چند صد بلکه ده ها تن بودیم و کم و اندک می شدند. پس تنها سه سال گذشته بود که رامسفیلت استعفا و ناتوانی و شکست را اعلام کرد و مجاهدین برپایی دولت اسلام را اعلان کردند بسا گروهند که بر گروهی بسیار به ازن الله پیروز شدند و الله با صابران است و امریکا شکست خورد و نابودی ارتشش را فرا گرفت و شروع به سقوط کرد اگر صحبوات خیانت و ننگ آن را نجات نمیدادند و سنتی الله عزوجل برای تصفیه و امتحان برای مجاهدین آمد و فتنه بزرگ و مهنت شدید شد تا اینکه در شهرها تمکن را از دست دادیم پس مجاهدین جو صبر و یقینشان افزایش نیافت و برای آمریکا فرصت تلایی برای فرار پیش آمد پس او با ما پیروزی و اقرب را اعلام کرد در حالی که بسیار دروغگو بود پس ای قاطر ناموفق و شکست خورده پیروزی مورد دعایت کجاست نقشه خاورمیانه جدیدی که آوردی کجاست ای آمریکا آن را فراموش کردی یا خودت آن را به فراموشی سپردی یا اینکه ما آن نقشه را کشیدیم و نابودی تو نزدیک شده عراق یک پاچه و آزاد کجاست و دموکراسی کجاست خودتو مردمت و همه ای دنیا را فریب میدی یا به دولت اسلام اعتراف میکنی امنیت آبادی و شکوفایی وعده داده شده کجاست دروغ میگویی آمریکا یا از محقق کرده در وعده ها ناتوان هستی یا امنیت دنیا را با جنگت علیه ما افزایش دادی ای آمریکا یا ترس و ایرانی فراگیر شد و کانادا و فرانسه و تونیس و ترکیه و بلجیک شهادت میدهند آیا تروریسم از بین بردی و آتش جهاد را خاموش کردی یا منتشی را فراگیر شد و افزایش یافته و همه زمین ها را در بر گرفت آیا تو بر مجاهدین پیروز شدی یا اینکه ما خلافت را اعلام کرده و به فضل الله از تمکین برخوردار شدیم درنگ کن ای آمریکا جنگ هنوز تمام نشده و هنوز پیروز نشودی و به اذن الله به زودی شکست میخوری پس منتظر باش چون شمشیرهای ما کند نشده و دستهای ما خسته نیست و عزیمت های ما درمانده نشده و ما هم خسته نیستیم و ضعیف نشدیم بلکه ما به فضل الله چندین و چند برابر قوی تر از آن چی در ابتدای جنگ تو بودیم هستیم ای امریکا و هر روزی که می‌گذرد ما به فضل الله قوی تر شده و تو ضعیف میشوی. ما با گامهای راسخ و واضحه حرکت کنیم و تو با نقشه ناموفق سرگردان هستی ای اوباما و ای مسلمانان ای امت محمد صلی الله علیه وسلم این همان شامی رسوا کننده است حقیقت برای تان روشن شده تا اینکه مانند خورشید واضی است پس هر کسی هلاک شود با دلیل روشن حلاک شود و هر کسی زنده گردد با دلیل روشن گردد این دنیای کفر است که همگی گرد آمده و ائتلاف کرده و برای جنگ با دولت اسلامی همپیمان شده و جنگ با آن و شکست نابودی آن را مهمترین اولویت قرار داده است اما بهانه کفار و هدفشان چیست و حقیقت کدام است و شعار چیست به چه چی دلیل دخواد دولت کفری برای جنگ دولت اسلامی گرد آمده اند چی امریکا و همپیمانانش بیستو چند هزار حمله هوایی انجام داده اند بله بستو چند هزار حمله هوایی چرا ملیارت ها مارشان را در جنگ با ما خرچ می کنند چرا ارتش ها و گروه ها و را آموزش داده و مسلح می کنند چرا فرزندانشان را از پشت دریاها بدون توجه به جنگ ما می فرستند چرا به جز معایه نشده ها کسی از جنگ جویان را آموزش نداده و مسلح نکرده و پشتیبانی ننموده و حمایت نکرده اند اگر جواب میدهند از آنان بپرسید یا خودتان جواب دهید اگر عاقل هستید پس دنیا بطور کلی برای جنگ با ما جمع نشدهاند مگر به خاطر اینکه ما به عبادت الله به تنهایی و بدون شریک امر و به آن تشویق میکنیم و به خاطر آن دوست میداریم و کسی را که آن را تک کند تکفیر میکنیم و از شرک در و الله حشدار میدهیم و در آن شدید هستیم و به خاطر آن دشمنی میکنین و هر کسی را که آن را انجام دهد تکفیر مینماییم این دعوت ماست و فقط به همین خاطر با دنیامی جنگیم و با مامی جنگند و مسخره است که امریکای ادعا می به خاطر یاری مظلومان و کمک به مستضعفان یا دفاع از آزادی مردمان یا شهروندان با مامی جنگند بلکه مسخره در این است که چار پایانی که منتصب به اسلام و دین هستند آن را تصدیق می کنند پس از آن که آنچی در شام بر مسلمانان آمده را می بینند و شوخی و مسخره نیست که آمریکا دعا می کند برای دفاع از اسلام و حمایت آن از تحریف تندروها یا جعل هویت دروغ گویان یا تعویر جاهلان با ما می جنگت و فقط شوخی و مسخره و بدترین بلا این است که چارپایان علمی به دروغ حساب شده برای مجاهدین فتوا دهند که مرتدین معاینه شده مجاهدین فی سبیل الله هستند که با خوارجی از دین در رفته می جنگند آگاه باشید که لعنتی الله بر ظالمان باد ای مسلمانان مجاهدین پیروز هستند با شمشیر و نیزه و با دلیل و برهان پیروزند پس این همان گروه اندک است که با سپاهیان و دولت‌های دنیا پیکار می کند و سال‌های طولان استقامت می کند داخلی هیچ کشوری نشوده است که تواقی توارسته باشند آن را از بین برده یا در آن به پایان برسانند هیچ ارتیشی با آن نمی جنگد مگر آنکه آن, آن ارتیش را فرسوده و ضعیف کرده و خون خون‌آلود میسازد و می گریاند و مجاهدین همشو به آماده باشی همه شبهات را علرغم آماده باش همه عالمای سو در جنگ آن و مسخره کردن همه کانال ها از بین میبرند و هیچ کس بعد از جنگ شام عذری ندارد و حق برای خاص و عام واضی و آشکار شده دو خیمگاه، دو لشکرگاه، دو سنگر جنگ کفر و ایمان جنگ ولا و برا و هر جنگ بجز آن بیفایده است هر قدر کافران در جنگشان شعارها بلند کنند و هر اهدافی را که ادعا نمایند ادعاهای غرب کافر در حمایت از غیر نظامیان و دفاع از حقوق بشر و آزادی کجاست قطعا نقاب نجابت دروغی و تقلبی افتاد و صورت زشت زیر بشکه های مرگ و نابودی و گاز نسیری ها ظاهر شد پس آمریکا و همپیمانانش درد نمی کشند و احساسی سختی نمی کنند مگر زمانی که مجاهدین پیشروی کرده و پیروز شوند دنیا از کشتارهای هر روزی روزی ها و نسیری ها در مسلمانان گریه نمی کنند و احساسات اروپا و آمریکا و های کفر جریحدار نمی شود و برای آوارگی میلیون ها تن تکان نمی و گرسنگی و بیماری و سختی و مرگی هزاران تن از مستضفان از کودکان و زنان و پیرمردان محاصر شده آنان را ناراحت نمی کند آمریکا و همپیمانانش اینها را در غوته و زبدانی و مزایا و نمی بینند هیچ محاصره ای را به جز شهر خیر ندیدند پس برای کمک با آن و پایین انداختنی کوههای های غذا هر روز برای نسیری ها شتافتند و بدنهای اروپا و امتهای کافر برای نابودی بیمارستان ها و محله های مسکونی توسط روسیه نمی لرزد در حالی که دوچار بیخوابی او جنون می شوند زمانه که دولت اسلامی بعضی از رؤوس کافر را قطع می کند و میلر زد و تهدید کرده و دسته آورده و بمباران می کنند. با هم هم می آیند. اما گوش هایشان کر و چشم هایشان کور شده است در برابر آنچه سریبی ها و هندو ها و از کشتر ها و, و کارهای حولناک که در حقی مسلمانان در میان مارو ترکستان، اندونزیا، کشمیر، فیلیپین، فلسطین، بوسنیا، آفریقای مرکزی، چی چین، ایران و در همه جا انجام می دهند. پس مادامی که فاعل مسلمان نباشد هیچ تجاوز و اجرام و تروریسم وجود ندارد و اگر هدف قرار گرفته مسلمان باشد هیچ تجاوز و اجرام و تروریسم وجود ندارد فلا عدوان ولا اجرام ولا ارهاب ان لم يكن الفاعل مسلما ولا عدوان ولا اجرام ولا ارهاب ان كان المستهدف مسلما نضر الله وجوها لم این مثل السحاب ادامه را در شبهای آینده فراموش نکنید تزل السحاب من وريد القلب تروی عندما كل الهضاب عندما كل الهضاب